اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اقوم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد ناصومين وبعد قال الله تعالى في كتابه المبين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان لله وان اليه راجعون السلام عليك يا ابو عبد الله وعلى الارواح التي حلت بثنونك عليك منا جميعا ورحمه الله السلام راه رویش یادتگی حضرت مولا منعقد شده است توفیق پیدا کنیم و شرکت کنیم تا هنوز ما و شما به مسائل ابتدایی و زیربنایی بحث خش که مقدمه اساسی کار را می پیمود دنبال کردیم و پیمودیم فهمیدیم طلبه چیست، بانو چیست، فهمیدیم جامعه چیست و اگر بخوایم وارد مسئله جامعه بشویم، مسئله اجتماعی بشویم چگونه باید کار کرد؟ در جلسات قبلی فهمیدیم که جامعه یک حقیقت است باید در سطح کلان جامعه دنبال بررسی رسی عوامل بود و همینطور، برای ساخت جامعه بر تک تک افراد جامعه باید توجه کرد و از این راه هست که میتوان جامعه را تحول کرد و ساخت بنابراین حالا امروز ما و شما وارد میشیم به مبناشناختی جامعه آشورایی. جامعه آشورایی دارای چه مبنا و اصولی است جامعه آشورایی که ما بنا داریم در کابل اون را بسازیم اصولی که این جامعه را تشکیل میده دهد چه مواردی می تواند باشد این همینطور وارد می و می بینیم که ما همه علوم دینی را توان دستبندی به سیگونه گرایش کنیش و ارزش ها می تواند بندی کرد و همینطور امروز ما مبنای بینیشی جامعه آشرایی را باز کنیم و همینطور این گونه بینیش و گرایش باید در جامعه کابول ایجاد کرد تا جامعه کابول جامعه آشرایی ساخته شده باشد و ساخته بشود آیه‌ای که قرائت شد این لله و اینا الیه راجعون آیه‌ای است که بینیش یا جهان بینی مردم را نشان میدهد. حضرت آقا و مولا امام حسین علیه السلام در جای جای از این حرکت بسیار سنگینشان این کلمه استرجاع را بارها بیان می‌فرمود و تکرار می‌کرد انا لله و انا الیه راجعون یعنی ما از خدا هستیم و آخر امر ما هم بازگشت به خدا میکند این خودش بیانگر عقیده هست که واقعا ما از خدا هستیم و آخر ما هم به خدا بر برمیگردد اما آیا این عقیده تنهایی کفایت میکند یا خیر نه عقیده تنهایی کفایت در نیست اما علیه صلات و سلام در مدینه وقتی که از طرف حکومت وقت مجبور می شود که باید بیعت کند یا اینکه راه دیگه را برگزیند و همچنین در مورد حکمرانی یزید لعنت الله علیه میفرماید: فرماید اینا لله و اِنَّا الیه راجعون. ما از خدا هستیم و بازگشت ما هم بسوی خداست و علال اسلامی از و بر اسلام باید سلام کرد باید فاتحه اسلام رو خواند. از قدبولیت الامت و براع مثل یزید هنگامی که امت اسلامی حاکم و سرپرستی چون یزید داشته باشد اول امام علیه السلام او بیانگر درونیش که هم توحید یا اعتقاد راسخش باشد رو در زبان میارد آیه قران کرم لله و ان الیه راجعون بعد میفرماید اگر که اسلام حاکمی چون یزید داشته باشد دیگه باید فاتحه اسلام رو خوان اینجا امام علیه السلام و سلام بین توحید نظری و اعتقادی و عملی ارتباط داده است بر همه حساس وقتی ما بخواهیم در کابل جامعه آشرایی بسازیم باید مردم به گونه رزمنده اعتقادی و رسوخ اعتقادی پیدا کنند که مثل امام اعتقادش با عملش یکسان بشود اگر خدا را یا نمی بیند در نظر و در اعتقادات در عمل هم باید این چنین بی وقتی یک طلبه موفق شد یک بانوی موفق شد که مردم را تا اینجا رساند او زمان می شود گفت که یک مرحله از مراحل جامعه سازی آشرایی که در قسمت اعتقاد باشه انجام شده است مراحل بعدیش می ماند برای این اساس که مهم هست معنای زندگی و هدف زندگی کار اساسی است. در دنیای امروز افراد هستند که از نظر اقتصادی و امثال هم در رفاه هست در آسایش هست ولی چون زندگی برایش معنی ندارد لذا حتی گولی به تعبیر ما و شما قرص میخورند. ولی خوابشان نمیبرد، دست به خودکشی میزنند و کردن چون این کارهای چرا؟ چون زندگی برایش معنی نداره. اما از آن طرف افرادی که معنای زندگی رو درد کردن زندگیشان توان با هدف عالی و متعالی است ولو زندگیشان به ظاهر چهار مشکلات هست اما از زندگیشان، از زندگانیشان راضی است و توان با آرامش هست از آیندهش اش بلکه آینده را از آن خود میداند چرا چون اینها معنی زندگی رو درک کردند و هدف زندگی رو درک کردند ما شما در قرآن کریم دارین و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون جنیات و آدمی خلق نشده جز اینکه به پرستش خداوند متعال بپردازد این مسیر زندگی است این معنای زندگی است اطاعت خداوند متعال معنی زندگی است ولایت اولیای خدا در روی زمین معنی زندگی است وقتی ما احکام نداشته باشیم دستورات فقهی و ولایت نداشته باشیم در این دنیا برای چی زندگی کنیم؟ معنی ندارد زندگی برای چی چند مدته و چند سباه بزستیم و دو اون همه مشکلات و سخته ها را تحمل کنیم دردها ها را تحمل کنیم ناراحته ها را تحمل کنیم ولی وقت فقه مطرح بود خدا مطرح بود سرای قیامت مطرح بود حساب کتاب مطرح بود او زمان همه چیز معنی پیدا می کند. زندگی معنی پیدا می کند. تحمل سخته ها معنی پیدا می کند. زحمت کشیدن ها معنی پیدا می کند روزخانه ها و برگزاره مجالیس نظرونیات ها معنی پیدا می کند. ولی وقتی که خدا در زندگی آدم مطرح نباشه خدای نفستن یا سر حساب کتاب نباشه دیگه زندگی کردن بیمعنی است برای چی زندگی کند؟ اینجاست که معنی زندگی و هدف خلقت از نکات کلیدی است که ما در آشورا می توانیم به با اندک تعمل ببینیم وقتی ما علیه السلام حرکت می از همه قدم های اول اینا لله و اینا الیه راجعون در کلام مولاست وقتی ما علیه السلام حرکت میکند می کند هرکه که خونه دلش را در راه خدا می خواهد بدهد آماده سفر و حرکت بشود که فردا صبح گاهان حرکت خواهیم کرد حرکت امام این گونه هست پس یکی از مواردیه که در بینوان مبناشناختی جامعه آشرای می با توجه کرد مسئله معنا دار کردن زندگی و هدف خلقت یافتن هست دوم نقطه ای که در همین جا و در همه مسیر باید تأکید کرد توحید هست اعتقاد راسخ به یگانگی خداوند متعال توحید را در کتاب درسی خواندیم های مختلفی دارد اینکه ذات خدا یک و یگانه هست یعنی شرک رو باید برداشت این اساس کار هست بعدش توحید در عبادت آید توحید در توکل مطرح است توحید در ولایت مطرح است توحید در حکومت مطرح است های مختلف توحیدی که در درس هم قاند شده و در غیر می میبینیم در قیام آشورا به عنوان یک محن، یک مبنا مطرح هست یعنی وقتی ما بخوایم جامعه کابل رو جامعه آشورایی بسازیم باید در جامعه کابل انواع توحید حاکم بشود مردم کابل باید خدا را یک و یگانه بپندارند و بیدانن و اعتقاد راسخ پیدا کنند مردم کابل باید به خداوند به گونه یک موحد توکل کنند توحید در توکل مهم هست امام علیه و وقت وقتی با سپاه هور روبرو شد آنجا سخنرانی فرمود با سپاه حور صحبت کرد بعد از این سپاهیان گلایه کرد فرمود شما مردم بودید که به من نامت رستادید و مرا دعوت کردید که به سوی شما بیایم اما حالا آمدید در مقابل من قرار گرفته اید. بعد از آن امام علیه السلام چی می‌فرماید؟ فرماید؟ هم خداست و سیغنی الله عنکم و خداوند متعال مرا از شما به زودی به خواهد کرد. این همو توحید در اعتماد و نصرت و توکل به خداوند متعال هست. یعنی در قدم اول خود طلبه، بانوی طلبه اگر دوچار مشکل می شود، امیدش ناامید نشود. باید توکلش را به خدا کند. اونگونه که امسال ما و شما الحمدلله چنین شروع کردیم. در اوایل مجلس نگرانی ها زیاد بود، ولی ما با شما با توکل و خداوند متعال جلسات خش رو آغاز کردیم این گونه باید باشد ادامه حرکت رو هم تلاش کنیم این گونه ادامه دهیم جز آن که کشته شدن نفع نداشته باشد وقتی کشته شدن نفعی نداشت او زمان تقیه هم معنا می کند و حفظ جان لازم است و الا در راه خدا باید جان داد و جان سپرد امام علیه صلات و در ادامه راه با شخص به نام عبدالله مشرقی صحبت میکند و روبرون میشود اوضاع کوفن و آماده شدن کوفیان در مقابل امام حسین و با حسین رو خبر میشود امام در اینجا هم میفرماید حسبی الله و نعم الوکیل تکیگاه هم خداست و من توکلی به خداوند متعال میکنم این هم توحید توکلی به خداوند متعال و توحید تکیهگاهی به خداوند متعال هست ما نباید به افراد دیگر دل ببندیم هیچ جامعه و هیچ شخصی که به غیر خدا دل بسته باشد آخرش موفق نشده است در مشکلات زندگی وقتی که حرکتشان مسیرشان بچار مشکلاتی عمده شده است. ولی اون که به خداوند متعال توکل کرده است موفق می شود. برای اساس بر همگان لازم است که اول اعتقاد خودمان را راسخ کنیم. اول خودمان را در این امتحانات آزمایش کنیم یعنی آزمایش پس بدهیم که نشود در جای جای زندگی وقتی دوچار مشکل میشویم پایمان بلرزد باید اعتقادمان راسخ بشود و خود ساختگی و علم مقدمه و مهمتر از همه چیز هست عقاید باورها و توحید مقدمه و اساس همه کارکردهاست در جامعه سازی هم اول باید در مسائل اعتقادی پرداخت تا مسائل اعتقادی مردم درست نشود جامعه عملی آشرایی نخواهد شد زمان جامعه کابل می شود جامعه آشرایی شد که اول اعتقاداتشان درست شده باشد امام صلی و سلام در منزل سعلبیه وقت خبر شهادت حضرت مسلم ابن عقیل علیه صلات و سلام و را را می شنود بارها کلمه استرجاع یعنی اینا لله و اینا الیه راجعون رو به زبان می آورد. در همین منزل امام لحظه خواب می رود. در عالم خواب می بیند که یک سواره آمن به امام علیه سلام عرض کرد که این کارمان به سرعت می رود منظورش این بوده که کاروانی که محسن علیه السلام دست این کاروان هست خیلی سریع داره می و مرگ هم در پی آن شتابان است ایمان علیه السلام در عالم رؤیا می بیند یک سواره می آید به ایمان علیه السلام عرضه می کند که این کاروان به سرعت می رود و مرگ هم در پی آن شتابان است و اما علیه و سلام از خواب بلند می شود این خوابش را صحبت می کند آنجا حضرت علی اکبر علیه السلام هست علی اکبر به بابایش عرضه می کند بابا جان مگر ما در حق نیستیم مگر حرکت ما حق حقیقت ندارد اسلام حقیقی نیست اما علی سلام اینجا قسم یاد می کند مے ما بر حقیم. بعد حضرت علی اکبر چه میفرماید علی حضرت علی اکبر به با بایش عرضه می کند پس چه باقی از مرگ یعنی وقتی ما بر حق هستیم هیچ باقی از مرگ نیست مرگ هیچ سختی ندارد چه زمان من مرگ در پیش یک مؤمن ساده می شود و سبک می شود زمانی که اول کار و آخر کارش رو خدا بدانه این الله و این آلیه راجعه جامعه می تواند جامعه آشرایه بشود که هم, هم هست و بودش خدایی شده باشد از اوی و بس اویی اوی شده باشد و به جامعه از اوی و بس اویی اوی شد دیگه شبهات نمی تواند مانع این مردم بشه دیگه اگر بعضی ها این شبهه وارد کنند که مردم فقیر هستند چرا بیره میزنن این شبهه سر این مردم اثرگذار نیست چرا چون اساس همه کار را خدا می دانن. یک آدم مؤمن راسخ میداند که وقت مردم دوچار مشکل می شود به دو دلیل است یا اینکه خودشان خود را دوچار مشکل کردند یعنی بر اثر گناهان بلاها بالای مردم نازل شده است یا اینکه به خاطر امتحان هست در جلسه قبلی راجع به جامعه خاندیم دیگه صحبت شد که جامعه بی دلیل نمی کار اتفاق بیفتد مردم چون گناه میکنن لذا به مشکلات میشه یا اینکه مورد امتحان هست برای این است که خداوند متعال مقام این مردم را بالا بیبرد ایمان و السلام وقتی میخواست از مدینه حرکت کنه قبلش حد اقل دو شب رفت کنار قبر پیامبر شب اول رفت مناجات کرد و مدیار ارزه کرد یا رسول الله من شکایت میکنم از این مردم من یگانه یادگار نوادر در بین این مردم هستم و این مردم با من این گونه رفتار میکنند. شب دوم اما علیه و سلام رفت بالا قبر پیامبر دور نماز خوان باز هم همین شکایت رو کرد در همونجا هم یک لحظه چشمان ایمان اسلام و سلام به خواب رفت در عالم رؤیا و مکاشفه پیامبر اسلام رو در خواب دید پیامبر فرمود حسینم نور دیده خداوند برای یک مقام را در نظر گرفته است که به این مقام ناید نمی نمی‌آید مگر این که باید در راه خدا کشته شوید خدا خواسته است که اهل وبیتت را اصیر ببیند انتریس بعضی از مشکلات و سخته ها برای این است که مقام برود بالا با توجه به این این شبهات بی معنی است که مردم دوچار مشکل اقتصادی هستند چرا بیرق میزنند چرا پرچم میزنند و جای آن لباس برای مردم تهیه کنند خدا اگر بخواهد لباس میدهند ولی خدا نخواهد چگونه لباس تهیه شود تازه این بیرق هاست که به همو بی لباس ها لباس تحییه میشود این بیرق هاست که مردم را در راه راست می آورد و کسانی که دوچار توان مالی هستند ضعیفان مالی کمک میکنند این گونه هست خیلی رو دیگر به همه وسیله حل میشود بنابراین اولین کاری که ما و شما میکنیم در قدم اول باید اعتفاد خودی من راسخ بشود در قدم دوم جامعه عرب هدف خیلقه را بهش یاد داد و جامعه عرب با معنی کرد در قدم سوم توحید باید در جامعه حاکم بشود و مردم بدانند و بفهمند که حاکم حقیقی فقط خداوند متعال هست و وقتی جامعه موحد شد جامعه مسئولیت پذیر می شود. در همه قسمت این که میگند به کمک کومت بشود یا غیر آن کی چون این کار انجام میدهند کسانی که موحدند وقتی ما در حرکت آشورای نگاه میکنیم امام علیه و سلام چی میفرماید؟ این جمله امام خیلی با معنای اینه: و بين الیه راجعون و على الاسلام السلام اید قدبولیت الامت و برای مثل یزید وقت اسلام مانند یزید سرپرست داشته باشد باید فاتحه رو خاند. این بیانگر مسئولیت است یعنی وقتی یک جامعه از نظر ایمانی از نظر دینی و اسلامی دوچار مشکل می شود بر آلمان و بر طلاب و قاریان قرآن و آلمان و اندشمندان اسلامیست که در اینجا باید علمش رو ظاهر کند و اعلام مورد لعنت خداوند متعال و لعنت کنندگان قرار خواهد گرفت. ما روایات بسیار تکان دهنده و حشدار دهنده نسبت به علما داریم عالمی که علمش را به خاطر فخر فروشی بروز میدهد این علم از نظر اسلامی مورد نکوهش قرار گرفته اما در جایی که علم بروز علم لازم است به کسی علمش رو بارز نکند و در معرض استفاده مردم قرار ندهد چون این عالمی هم مورد نکوهش قرار گرفته است جامعه آشوری جامعه مزخولی پذیر هست نمی شود گفت فلانی هست من چی؟ و بمنچی در اسلام نیست اون جمله خیلی جمله قشنگیست اگر کسی بمنچی بگرد و مسیرش را ادامه دهد عاقبت کار خود روزگار روزگار روی این نفر بیارد که خود این نفر بمنچی با منچی کند در اسلام کلکم را و کلکم مسئولون عن رعیته هست روایت هست همگی شما نسبت به دیگران خش مسئولیت دارید این فرمایش حدیث و زبان روایت هست بر این اساس جامعه کابول که باید آشرای بشود جامعه مسئولیت پذیر باید بشود هر مسئولیت الهی که روی این جامعه میآید باید به شانههایش بکشد و به دوش کشد چه زن باشد چه مرد باشد چه طلبه باشد چه غیر طلبه باشد و همینطور مسئله مهم دیگهای که باید از نظر اعتقادی در یک جامعه حاکم بشود مسئله ولایت مداریست در جامعه که ولایت وجود نداشته باشد اون جامعه جامعه آشرایی نشده است که هیچ بلکه از هم پاشیده خواهد شد توحید صفوف و پرهیز استشدد و پراکندگی یکی از اواملیست که جامعه را نگه می‌دارد همینطور توحید حکومتی از عاملی است که جامعه را استوار میگرداند وقتی جامعه دانیست که ولایت فقط از آن خداست بعد خداوند ولایت را به پیامبران انایت فرموده و بعدشان هم به ائمه خدا در چون این است که ولایتی هیچ کس دیگر را نمیپذیرد. جامعه کابل وقت جامعه آشورای بشود چشمانشان و دامان و دستان بیگانگان دراز نخواهد شد ما دنبال این نمیگردیم که باید نصارا بیاید ما را کمک کند یهود بیاید ما را کمک کند هندوها بیاید ما را کمک کند و دیگران بیاید ما را کمک کند بلکه خود ما مسئولیت داریم که باید حرکت کنیم و هر هرچند دوچار مشکل شویم باید قدم به قدم و پیش رفت کارشناسانه هم باید به پیش رفت چون مسئولیت هست، روشمندان هم باید به پیش چون مسئولیت هست. بر این اساس، حاکم کردن اعتقادات درست و راسخ کردن اعتقادات درست در جامعه برای جامعه سازه آشرایی در کابل اساس کار و مبنای کار هست. از اصول و پایه های جامعه آشرایی اعتقاد، توحید و پایبندی و مسئولیت پذیری است. طلبه ای که مسئولیت نپذیرد، طلبه شده نمیتواند. نه خودش آشرایی شده است و نمیتواند جامعه آشرایی بسازد. نمونه های از اعتقادات رازیخ در کربلا خیلی هم زیاد هست از حضرت علی اکبر علیه السلام یاد شد علی اکبر علیه السلام جوان بوده است کمی سین سالی داشته است. اما حتی در خورد سالن هم این اعتقاد هست در شب عاشورا امام علیه السلام اشعار جنسوزی ایرا... ایراد می فرماید راوی هم امام زین العابدین علیه السلام هست. امام علیه السلام می فرماید در خیمه بودم چون امام بی... بیمار بود ظاهرا حضرت زینب سلام الله علیها هم در کنار امام سجاد علیه السلام بوده است آنجا صدای امام حسین علیه السلام را می که مال علیه السلام میفرماید یعنی اوف بر توی دنیا از بیوفایی روزگار چطور شعری را می سراید. اینجا امام سجاد علیه السلام می ما دانیستیم که بلا نازم شده است و روزگار خراب نزدیک شده است. این مسئله را پیمودیم اما جانم زینب همشنین با چشمان عشق رفت به سمت امام حسین علیه و سلام در همی شب هست وقتی صحبت های در میان می آید هر یک مشغول کار و مناجات و است از جمله افراد و پسران خورد که در اینجا آمده سوالی از حضرت آقا و مولا ابو عبدالله نوزین علیه السلام و سلام حضرت قاسم هست قاسم که سیزده ساله هست جمع ما و شما چند تا سیزده ساله داره پس بسر بچه خورد قاسم سیزده سالم می آید از امام علیه السلام و سوال می کند جان آیا فردا من هم شهید می شوم. اینجا امام علیه السلام و قاسم رو دیلداری می دهد چون سر بچه هست کوچک است بعد از چند لحظه امام از خود قاسم سوال می کند نور دیده امو مرد را چگونه میبینی؟ حضرت قاسم در جواب ارزه میکند احلا من الغسل امو جان مرد در نزد من شیرین تر از غسل هست یک پسر بچه کوچک ده ساله مرد را اونگونه میبیند احلا من الغسل مرد در نزد من گواراتر و شرین تر از خسرن است اینجا امام علیه بهش خبر میدهد که فردا مردان همه شهید میشوند جز آنهایی که به اراده خداوند متعال باید زنده بیمان صبح آشورا هم که میشود بر اساس نقلی که شده است اولین جوان و اولین مرد که از خاندان احلو بیت به میدان می رود حضرت علی اکبر هست وقتی علی اکبر به میدان می رود بار مسیبت علی اکبر بر امام سخت تمام میشود. چون نقل شده است امام هرگاه گامه خواست چهره پیامبر را مشاهده کند و چهره علی اکبرش نظر میکرد. لذا، مصیبت علی اکبر بر امام ناگوار آمد و سختی کرد. بعد از اینکه که علی اکبر شهید شد همین جوان سه همین پسر 13 ساله یعنی قاسم آمد ارزا کرد امو جان اجازه بده میدان درده قاسم ده ساله هست سه ساله بوده است که پدرش امام مشتبه علیه سالات و را از دست داده است. لذا به مدت ده سال دیگر همراه امویش زندگی کرده است. یعنی در عالم واقع امام حسین علیه سالات و هم امو برای قاسم بود و هم به جای پدر پدری کرد برای قاسم امام علی سلام فرزندان برادرش را دوست داشت این پسر 13 ساله هی میآید عموجان اجازه بده میدان بروم اونم بعد شهادت علی اکبر که برای امام سخت تمام شده است هر بار حضرت قاسم اصرار میکند امو اجازه بده امام سکوت می و میگیرید حضرت قاسم امو اجازه بده امام سکوت و گریه می کند اعتقاد را می دینه رسوخ عقیده این است پسر 13 ساله آقا اجازه بده امام سکوت گریه می کنه. در یک نقل نقل میکند کند آخر قاسم نومید میشود. شود بر میگردد. به سمت خیمهش حالا بر اساس الاهدت و الراوی اونچه که شنیده شده میگه قاسم نومی شد رفت در گوشه از خیمه‌ها نشست زانوانش رو بغل کرد و گریه کرد و امویم به من اجازه میدان رفتن نمیدهند هم به نقل دیگه قاسم رفت درون خیمه خودش و مادرش گلایه کرد و شکایت کرد مادر جان به من اجازه میدان رفتن نمیده بعد مادرش میگه که ناراحت نباش بابای امام مشتبه یک نامه به من امانت داده این وصیتش هست این نامه رو که به نزد امویل بیبری حتما قبول میکند و خوشحال میشه نامه را از مادر میگیرد میارد به نزد محسن علیه السلام در اون نامه چی نوشته شده است در اون نامه امام مجتبی علیه السلام می نویسد برادر لا یوم یومکه یا با عبد الله مصیبت ها سخت و سنگین است ولی هیچ مصیبتی همچون مصیبت تو نیست این از فرمایشات امام مجتبی علیه السلام برادر من در روز آشرا نیستم که از حمایت کنم ولی جای آن فرزندم قاسم را بپذیر. نمیدانم هیچ وقت دوچار سختی و مشکلات شده اید یا نه آدم وقت دوچار سختی و مشکلات می شود اون موقع یاد بستگانش می افتد وقت تنها میماند به یاد عزیزانش می افتد میگه کاش فلانی بوده امروز مرا یاری میکرد اینجا امام علیه السلام آیا به فکر برادرش نمیفتد ای کاش امام مجتبی علیه السلام بود و مرا یاری میکرد لذا در این نامه اینچونین هست برادر من نیستم قاسم رو بپذیر در نقل اینچونین است. قاسم هرچی اصرار کرد امام اجازه نداد ف ابا یعنی اجازه نداد آخر کار به جای رسید که حالا با آوردن این نامه یا غیر این نامه دیگر امام علیه السلام قاسم 13 ساله رو با زبان اجازه نداد شما تصور کنید یک پسر 13 ساله پیش آدم بیاید هی بگه به من اجازه بده که من بروم بید از من وقتی آدم تصور کنه این پسر 13 ساله چگونه دست و پا بزنه خیلی سخته لذا امام علیه سلام اجازه نمیداد آخر کار جای رسید که امام نتونست با زبان یعنی با زبان اجازه نداد بلکه دستانش رو باز گذاشت این دست بازگذاشتن امام یعنی چی؟ یعنی قاسم جنبی بیا اول من چهره رو ببوسم آدم با پسر 13 ساله چی میکنه؟ کسی که هی از آدم اجازه میگیرد و خداحافظی کند و قرار هست برود دیگه آدم امیدی و زنده ماندنش هم نداشته باشه لذا دستانش رو باز کرد و قاسم رو بغل کرد و صورتش رو بوسید نقل می دست و گردن قاسم دستان قاسم هم و گردن امام انقدر هر دو تایشان با هم گرستن که بیحال حال شدن در اینجاست امام اجازه می دهد و قاسم میدان می, می قاسم هم که میدان می, می چون پسر 13 ساله از کوچیک است زره یا اون محافظتی که به تن قاسم نمی آید همینطور عادی و ساده رفت به سمت لشکر دشمن چهره گرگون و مثل ماه تابان چون شجاع بود از خاندان شجاع بود موحد بود اعتقاد راسخ داشت تعداد از نجیبان را به حلاکت درآورد. اما اینجا چه صحبت بشه و چگونه به تصویر کشیده شه این گونه نقل کردن گفتن وقتی که قاسم رفت به سمت میدان یک تحولی برای محسن علیه السلام پدید آمده بود یعنی امام حالتش عوض شده بود حالت عادی نداشت یک پسر 13 ساله رو فرستاده است میگه امام استاده بود اسبش رو آماده بود لگام یا لمام از هم بالای گردن اسب بود مثل ای بود که انتظار میکشه همینطور انتظار میکشه که یک بار صدا آمد امو جان دادن برست و امام مثل باز شکاری بالای اسبش پرید و رفت سمت میدان وقتی سمت میدان میرود 200 نفر قاسم رو محاصره کرده قاسم روی زمین افتاده بود و امام علی السلام هم وقت آمد لشکریان وقتی متوجه امام شدن همه فرار کردند گرد و غبار صحرای کربلا رو با خودش پیچید و دیگه نفهمیدن چی شد. بعد از اینکه گرد و غبار نشست متوجه شدن که امام و بالین قاسم نشسته و سر قاسم در بغل امام هست. این لله و اِنَّا الِلَيْهِ این هست هم اعتقاد راسق و این هست کار کرده روزهای قدر و جمعه، مکیدی و انالله با اناله راجع. صلی الله عليك يا آبا عبد الله، و علی الروح التي حلت بفناك. عليك منا جميع و رحمت الله يا سيدنا و مولانا. اینا توجهنا و استشفعنا و توسرنا الله و قدمناکا بین يدائی حاجاتنا یا الله الله وش بعلى عائد الله اللهم يا قومي بحق محمد يا علي بحق علي. علي يا فاطر وبحق فاطمه امين يا محسن بحق الحسن لا يا قديم الاحسان بحق الحسين اللهم بحق تسعة المعصومين من ذرية الحسين لا يلهي بحق حسين وحسينيان اون خير مون حزب شبگردان لا بده بدخواهان را به حولشان برگردان مریج مریض داران مخصوصا مریج مورد نظر شفای عاجل و کامل قنایت فرمان سفر مسافران یه بیمون خطر گردان حوائج مشروع محتاجی ملتمزین دعای جمع روا فرمایم خسن توفیق خسن آقبل عنایت گردان ختم کار من را با حسین و حسینیان قرار ده سلامتی و تعجیل فرج امام عصر علیه السلام و سلام بر محمد و آل محمد صلوات